همانطور که پیشتر حضور شما شنوندگان گرامی به آگاهیتون رسوندم بعد از زهر امروز تظاهراتی در حمایت از مبارزات و اعتراضات مردم شهر بانه و همینطور سایر شهرهای کردستان و همبستگی با کولبران زحمتکش و خانوادههای داغدار بدازار امروز ساعت سه بدازار تا پنج مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر کپناک تظاهراتی برگزار میشن آقای علی آزاد مقیم شهر کپناک فعال سیاسی محبت کردن را رو باشون انجام بدیم در این رابطه نخواست جناب آزاد به شما سلام و صحب بخیر میگم؟ من هم به شما سلام و صحب بخیر میگم و به رادیو راژیو و از امیدوارم اه، که روز و روزگار خوب و خوشیده داشته باشید میخواستم در رابطه با تزارات بعد ازار امروز با شما صحبت کنم این تزارات چه زمانی شروع میشه و کجا؟ من هم مقدمتم بگم که این تظاهراتی که حرکت سراسری هست در اکثر شهرهای وستلا اروپا و امریکا شمالی این همبستگی وستلا برگزار هست به اضافه در شهرهای مختلف کردستان، عراق و داخل ایران واقع از اینجا شروع شده که سالهای سال هست که مسئله کل بران و کشتار اونها توسط نیروهای مرضی جمهوری اسلامی یکی از موضوعات بزرگ جامعه ای که وجود شد. سعی نمی‌کنم از اینکه این شو در زنده بودن معروف ارتباطات بین المللی و حمل و نقل وسیله‌گسترده و, و زمینی چنین شکلی از حمل و نقل حتی در دوران ابتدای تجارت را عبری هم وجود نداشت ولی به هر رو به شکلی هست که بیش از هزار نفر بارهای سنگینی رو از اون سوی مرز عراق به سمت کردستان ایران به با پول خودشون حمل میکنن زنان مردان تحصیل کرده پیر جوان همه از سر ناچاری به یه چنین کاری تن برداده با همه اینا با, با وجود اینکه سالهای سال هست که از خود مسئولین نظام از احمد اینجاد به صراحت اعلام میکن برادران قاچاقچی چیتال هوانی تا همه مسئولین به نوع مسئله رو مطرح میکنند و در جامعه چیز روشنی هست که قاچاق واقعی کانه و چیز از بنادری هست که در دست همین آغازاده ها و سرداران سپاه هست اونتا با همه ها، اونها به شکل آزادانه، بدون مالیات، بدون عوارض، بدون حسابرسی مشغول کار خودشون هستن در روز بیش از 500 تانکل بنزین از ایران به سمت افغانستان و پاکستان داره آچاق میشهد. یعنی آچاق که میشه این بیدونه علنام و سوبسید پولیگ مردم پرداخت میکنند. اما باری رو که مردمی که با خود هم همزیم کنن از این ورکه این ورمیادن به شکل تحتیرانی به قول محروف اینها رو به اینکار کردن این را هم بر مردم سخت میگیرند که دائما هفته نیست که مردستان ایران به خوان ای یا به مردمی دوستی از ای از دست نگم و به رنبار جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی به خواب نیفتن. در هفته اخیر همین مسئله به وجود اومده علارت می اینکه برای یه از مردم کار ساله شده که مجبوز دارن که بتونن بار سنگیز و کیلومتران و جاربی کوهستانی حمل بکنن مورد حمله نیروهای مرزی قرار گرفته و منجرد مرگ دو جوان شده در دربانه در همین رابطه اعتراضات گسترده این صورت گرفته که این اعتراضات که در شهرهای مختلف کردستان بوده و همینطور در خارج از کشور به همین سبب اعضاب و جریانات کردی و ایرانی در میابته سعی کردند که اعتراض خودشون رو به جمهوری اسلامی و همجورت به مردم ایران و جهان برسونند به همین سبب به حزب کمونیست ایران و کومله به عنوان سازمان حزب کمونیست ایران فراخانه داده و ما هم به عنوان کمیته دفاع از سیاسی از و حرکت پشتیبانی میکنیم امروز ساعت سه بعد زهر تا ساعت پنج تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوپناک برگزار میشه که ما امیدواریم که مردمی که میان در این تظاهرات شرکت میکنن نسبت به این مسئله اعتراض بکنن مضافه برای اینکه که هست این که مسئولی که در راوده با اعتصاب زندانیان و سیاسی تحت ایدان جریانداره بکنیم فریاد خود رو به گوش مردم برسیم تعداد کولبران در مرزهای عمدتان کردستان و ایران خیلی زیادند صحبت از هفتاد تا صد ازار نفر میشه آقای حسن روحانی هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری قول داده بود که این کولبرانو بیمه بکنه اما در این شبکه اجتماعی به صورت تنز یادآوری کردن که آقای حسن روحانی دست به نابودی کولبران زده با کشته شدن همین دو نفر پیشتر هم خیلی از کولبران در سالهای گذشته توسط مرزبانان کشته شدن نظر شما چی هست؟ که هاییی که من میگم تقریبا 60 هزار نفرد اینا کار برای مصادر شده یعنی اینا گنبان کسانی هستند که مجوز دارند از مثلا هرمانداری و از نادایی که مسئول مثلا چیز هستن، امنیتی هستن، مذبان ها از اینا مجوزی هستم هست. یعنی که تعداد این تا بیش از ست گزار نفت یعنی مردمی که مردم میتونه توی یوتیوب یا توی شیره های مدیه های بسلا مدیه میتونه جمعیت عمبوعی است. بس بسن این نیست که اساساً کسی از روحانی و همسالمون انتظاری رو نداره که بخوان کاری رو بکنن یعنی اگر که قرار بوده که کاری رو بکنن که اساسا چنین کاری تعلیرانیز بود این کار بودی این صدار به مردم کردستان تعمیل میشه مردمی که بیش از یک دهه اصله رو دوششون گرفتند و سرپراز و دقول معروف با شجاور در حبار قرآنی جمهوری اسلامی بای باید این بار از دوش بکشن از این سوی مرز و این سوی مرز این کار نیست که با کسی به کسی بخواد به نموانی یک شوق رو درست درد بشنست برای رژیم هم این مسئله مهمی نیست اگر بخواد در یک هفته حتی اگر برار باشه که از طریق تلکانی این مسئل رو هم رو نقل رو سازبان بده می میده یا اینکه که بخواد جازبه بکشی اون چیزی نیست که مثلا توان این رو ن ولي بحث برسر این هست که این مردم به که کې کار بدن به جایی که بهشون سرمایه درست بشه در جهت صنعتي در جهت کارهای تولیدي در جهت بسلاه راهی واقعی ولي چنین شکلی رو پیش نمیدیرند و طبیعی هست که یک بازار ن سوی مرز گذاشتن که مردم بتونن برای سنگینی رو کل بکنم از اون صور این صور یارم و تا بتونم رو داشته باشن که بتونم اون زندگی بکنم. از این نظر پیشکش روانی و سران جمهوری اسلامی بینا و خدمات این چنانی که برای مردم اهمیت داریمی زندگی شایسته از کار زندگی واقعی هست کاری که عنوان کار حساب بشه نه هر کاری رو که سر ناچاری مردم رو به درست کنوشی به تم کنوشی به, به نواد کنوشی این ها کاری که گموان شعور برای مردم در نظر گرفته داشت این ها سر مثل خود کنوشی مثل کلیه کنوشی وقتی جایی که امکانی نباشه که در باشه این شکل از کار هم جور کار تغییرامیس هست اما مردم در خاطر این زندگیش را فضمندانه خوشون کار رو اما رژیم بیش از هر چیزی خواهان سرکوب، خواهان جمع، ترور و بحشت در کردستان هست چون نیدونه که در روی دریایی از 8 من نفتت حکومت و سالهای سال هست که کردستان به صورت یک دژ نظامی به صورت در نرابده و از چشم مردم و مردم کردستان او ولی نیروی اشخانگر حساب میشه در رابطه با برنامه دیگری امشب در شهر کپنهاگ شب همبستگی با زندانیان سیاسی که در زندان‌های جمهوری اسلامی اعتصاب غذا کردن برگزار میشه راجب اینم لطف کنید توضیح بدید که در شهر کپنهاگ امشب شب همبستگی برگزار میشه. بله در رابطه با مسئله هم بستگی با زندانیان اعتصابی و مثلا فعالین این هم حرکت سراسری و بین المللی هست تقریبا در تمام کشورهای مثلا اروپایی و امریکای شمالی این مراسم برگزار شده به شکلهای مختلف یعنی از شب هم تو تا تظاهرات خیابانی تاکسید های خیابانی هر امکانی رو در هر شهر بر حسب توانی که داشتن دست بدن و در صورت در این کار انجام میدن در داخل ایران هم همینجور هست تزاراتی رو چند روز پیش در مقابل مجلس داشتن در دفاع از کارگران زندانی رضا شعبی و احتساب و زندانی زندانیان سیاسی رجای شهر و خیره ای این حکم سراسری هست ما هم وظیفه خود امید که در این رابطه کاری رو به سلا سازمان بدیم و توجه بیریم که به یا ما محدود بوده ما سعی کرده بودیم که با های سیاسی چپ ایرانی شب همبستگی رو امشب در لسلا کتابخانه پوینده برگزار بکنیم و بیشترین هدف ما این بوده که بتونیم با کار مناسب رو برای جلب همبستگی جمعش کارگری دانمارک با کارگران ایران و جلب همبستگی عذاب و نماط های مثلا مترقی و انسان دوست در رابطه با اعتصاد و فراهم بکنیم یه نقطه این من در اینجا دیرانواری ای بکنیم یک بخش دیگه ای از فعالیت هست که در رابطه با عذاب و جریانات مترقی و اعتقالی های کارگری هست که بسیار فعالی نیست کارگری در رابطه تلاش کردن که به حمایت های بین المللی و برای این که در زندان هستن به خاطر فعالیت های صندیکایی، فعالیت, فعالیت های کارگری برای طلب همه خودشون در زندان هستن کمپینی رو مثلا عنوان کمپین حمایتی رو اجرا درده ولی خب ما یه چیزی رو بایستی با شما و شنوندگان محترم شما در میان بذاریم ما جمعیت زیادی از ایرانیان هستیم که در دامارت زندگی میکنیم همینجور بخش زیادی از ایرانیان در آهوز، در آدنسه، در آلبورد در شهرهای روزر زندگی میکنم اینها از نظر اینها یک نیهوی وسیع گستردهی را هستند امکانات وسیع گستردهی در بین این افراد هست این ها بخشند ارزای ارزای دامارکی هستند این بخش بخشی فعالین تاریه کارگری هستند همه این یا بخشی اصاسا فعالین مدیای اینترنتی هستند امکانات وسیع هستند یعنی دلقوه ما نیروی وسیر و امکانات وسیر داریم که متاسفانه این نیروی دلقوه به ورفیل بدل نشده. اگر که همه جهت اطلاع رسانی، خبر رسانی و اعلام و ولو حتی به شکرهای چند نقره دیتونی توی شهرهای مختلف به این کمپین حمایت بکنیم، نیرویمون گسترش پیدا می همین جور که در شهرهای شعرها، دیگه در آلمان در این به صلاح دو فعالیت بسیار گسترده و موثرتر هست ما هم میتونیم ما اعتقاد ما بلی این هست که اگر همه این نیروها در کنار هم قرار بگیرند حتی اگر در یک شهر متمرکز نماشند حتی اینکه در یک نقطه متمرکز نماشند باز نیروی وحسی و هست که امکانات که در اختیار داریم که میتونیم با این امکانات خودمون این کمپینای بین رو حمایت بکنیم و به این شکل نباشه که فقط در کبناف و مثلا چند گروه سیاسی این کار پیش ببرن کار کاری هست، وظیفه این هست، همه هم هست، یه واقعیت روشنی هست که نیروی ما در زبانی جمهوری اسلامی بسیار ضعیف هست هست. و اونها عزیزان ما رو گنوان گروه های و در خانه مرگ و نیستی هستند در نتیجه ما بایدستی به میدان بیاییم اون چیزی که واقعی هست اعتصاد و راه مناسبی نیست در اینکه حق و قومشون راه واقعی این هست که مایی که در بیرون از زندان هستیم مایی هست که در خارج از کشور هستیم و از امنیت نستی برخوردار خوردار هستیم با کار و میدان بذاریم و این رژیم وحشی رو افسار بزنیم بتونیم خیلی اینها را بگیریم و نها رو بادار بکنیم که نسبت به جان و سرنوشت زندانیان سیاسی مسئول هستن و پاسخگو هستن نه اینکه زندانی سیاس که هیچ امکان را نداره در داخل زندان یک ماه چهار هفته پنج هفته دست از غذا خوردن و آب خوردن برداره و ب حالت مرگ و زندگی سراحل چی یک مرخصی چند روزه بدد و بعد دوباره دستگیرش کنم ببرم من دوباره این که انسانی و اجدانی هر هست که سال از یعنی کشکنه که ماست که بکنیم در سایر شهرها دو خصوص در آوس که دو برونی شهرها جمعیت وسیعی از ایرانیان در این شهر زندگی می کنند دست هم بگیم و به های مختلف این های به این رو از اخوت و ایادری کارگری یه جایی که همین حتما پشتیبانی بکنه نامه اعتراضی به سفارت جمهوری اسلامی فرستادم روابط ایران به دفاع از آزادی فعالیت کارگری و سایر زندانیان سیاسی شدن. خیلی ممنونم جناب از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو البارس گذاشتین امیدوارم که تظاهرات خوبی باشه ساعت 3 بعد از ظهر مقابل سفارت جمهوری اسلامی و همینطور شب همبستگی خوبی رو در کانون کتابخونه کانون زندانیان سیاسی کتابخونه پوینده در کپنهاگ داشته باشیم ممنونم از شما و همه همکاران شما و شنوندگان شما سپاسگزاری می‌کنم امیدوارم که میکند خوبی رو داشته باشین و امیدواریم که باز هم بتونیم در کنار هم دیگه حداقل این رو به گوش همه شنوندگان و کسانی که علاقمند هستن برسونیم